الله رسول الله و قال الحقي بحث در باره بنابرای طولانی صحبت نشه براتر از اختیار ما تا حدی خارج شد چون مخصوصا متعرض کلمات فقیر و اصولی و حکین بطوردار و محارف نوسه نصفانی شدیم گفتیم یه مقداری در اصلاف کلمات ایشون و خود محصولی مقداری بیشتر صحبت باشیم این به لحاظ طول بحث و اما به لحاظ مجرای بحث در اول متعرض روایات و عدله ای که در این جهت شده متعرض شدیم که البته خب همه رو به تفصیل نکنیم چون بنابود بحث اجمالی بشیم و از شد اجمالاً از روایات در نیمیان که به نیت محصیت و به اراده محصیت مثلا اقاقی مترکت بشه اما اینکه این نیت انسان و اون جهت باطنی او در سرنوشته او چه سووا چه عقاون تاثیر داشته باشه این از مجموع اایات در میاد قابل استفاده است. حال مثلا این احادیث سردا ضیخن و که من حیص مجموع بیا این که اینشا در آخر برسان ش خواهم کرد میشه از مجموعه در اون. اما ترتب تو بر خود مجرد نیت بدون انتکاب حرام واضح نیست. البسکو ادیا و علماء چه سن میکشیه گفتن اگر نیت داشت و تلبس و از مقدمات داشت عقاب داره و یا گفتن اگر نیت داشت و میخواست انجام بده یک مانع قهری رخ شد این عقاب داره اما علی خودش برگشت عقاب نداره این تفصیلات رو همین اثبات نمیشه کرد این در خلال بحث بر مشخ انساری پیدا در اثبات این تفصیلات از کردم اهل سنت عمده استدلالشون که این مسئله در نیت و این که در مجرد نیت گناه مترتب میشه و عبوبت مترتب میشه همون روایت ازلتقل مسلمان به سیفه حماس عمده اهل سنن و ارزمشه اولا مثلا در فتخ باری در شرح سی بخاری در همون جا داره و دیگران در عمده سلقاری مال عینی هم دیدن هم استدلال فلان به این روایت به این که اگر انسان نیت داشت برش معاقبه موشه لعنه ها عراض قتل صاحبه اون روایت رو دین توضیحشه دادی صدورش و کیفیتش البته خود احمد سنت هم مشهورشون قبول نکردن یعنی این حالا مخصوصا تطریقش رو شما از فرمین عبو بکره خبیز سعی کرده این جنگ جمل تثیر بکنه که مثلا در محیجه همی رو معنی مثلا د استاذی و اهل سنت تصریح میکنن که ما این مطلب رو قبول نداریم. این تصریح دارن گفتن ایده از صحابه بود در معاوضه معترض بودن در جنگ در جنگ مثل جمل یا صفین شرکت نکنه واسه این چون خلافت امامت شده امیرمونی بن ثابته کسی که بر علی خلیفه مشروع قیام بکنه باید با او جنگی حتی سفیه را امر الله فعل برت احداه باید با او جنگید و این حرف او بستر رو تقریبا قبول نکردن حتی روایت او بشر هم توجی حساب یعنی خود اهل سنت با اینکه مثل بخاری دو این حدیث رو آورده اونم در خواصت کم تر از ابو بشر نیست با اینکه دو بار این حدیث رو با بخاری باز هم خودشون توجیح کردن یعنی اینجور معنا کردن که لعل نبو اراده اقل صاحبه گفتن خب مفعول اراده در گذاشت قاسم هم بود و ازا بیگن عذاب قاتل بیشتره چون هم اراده داشته و هم قاتل من ارز کردن این احتمالاً بد سهمیده چون دیر مسلمان شده خیلی شعور کافی هم نداشته مادرشم که سمیه بوده به لفر آثار براسخی وادارش محفوظ باشه برادر ناتنی از طرف پدر نسبت به زیاده نردی مادرشون با زیادیه که سمیه لیکن پدرات مفرموند مادرم که مادر اجوریو که مناسب نیسته اینجا برده بشته علایه حاله این لعنه و اراده قتل سهاره لعنه و قاتله میخواسته بگه هر دوشون گناه قتال دارن یکیشون قاتل است و مقاتل نفهم نیدارست یعنی خود اهل سنت هم خلاصه هر دوشونه که این معبول نیست این حدیث اصلا معنای محسلی نداره معبول نداره نفی نفسه معناش واضحه به حسب ظاهرش و نه تطبیقش بر جنگ جمل بر امیر المامونی الله از کارم متاسفانه علمایمون مختن دوران سال سال عشقی بعد از رسائل شیخ چون در رسائل شیخ این به آمده و دیگه تو ارسنه حوزه های ما و علمای ما جاریش و این اصلا این به در مسادر ما از این ما به هیچ وجه نقل نشده از کارم من اون روز در کتاب مسند زید آمده و بعضی از مسادر ما از این مسند زید گرفتن مثل و شیخ صدوق در کتاب الا شرایط و الا در روایات ما خود ما از اهل بیت ساموزانی نحو نشده البته از که از تکرارش نکنیم در مسند زید بلی که قباحت روایتی کمی کم بشه داره ازالتق مسلمان به صیفه ما و به صیفه این ما علا ازالتق المسلمان علا غیر <تصفيق> تو متن سنیانی علا غیر سنته. تو متن سنیانی تو متن زی آمده مصنف زید یک کمی قباحات رو باید کمتر باشی باید این خواهده نداره دا با اون زیدشون میسازه علایه که کم آخوان این راجع بحث اول ما بود بحث دوم ما بحث عقلی بود به اصطلاح ها آلا. ما از این بحث عقیبی برای این که روشن بشه جهاتی رو از بحث باید متعرض شد بعد از درد کلمات مرحوم آیه اسفحانی که هست اولا رو در تجربه بود چه خوندیم شیش قول و 6 احتمال داده میشه جهت دوبار در بحث این بود که حقیقت اقاب و اقوبت و کیفر چیه حالا من میگم حالا چون یک نقطه شو بعد از فرصوی ما میتوانیم در این بار یک بحث عقلی به اصطلاح آقایان با قفل نظری حالا اغلایی و اون اینکه که بگیم که کیفر اصولا باید انعکاس خود جرم باشه یا شعاع جرم باشه. مثلا کیفر باید به جوری تنظیم بشه اصلا کیفر کمیتاً خصوصیتن مثلا کیفر این آقا زندان باشه یا کیفرش غرامت مالی باشه یا کیفرش شلاخ باشه یا کیفرش ممنوعیت از فخر باشه یا کیفرش حبس خانگی باشه این کیفرهای مختلف رو بیاییم بگیم در حقیقت انعکاس همون عمله اون عمل اون جور اون به سره، اون گناهی که انجام شده کیفر انعکاس اوه باید مناسب با او باشیم فرصول کسی آمد بلانست را به شخصی احانت کرد، نامه مثلا هرکزش ناموسی به کار برد خب مثلا بیایم ازش پول بگیریم این خیلی همچین انعکاسی پیدا میکنم این باید نو تعدیب بشه گوشمالی بشه به کارش فرصول بیایم زندان بکنیم خب زندان بلایش کالی بار سنگین رو بر دولت میگذاره تهیه زندان حفاظتش خصوصیاتش باره سنگین این مناسب نیست با کسی که یک لحظه زشت کار برده این مناسب یه نوع گوشمالی نو محرومیت مثلا مثلا محدود شغلی یه چیز اینجوری این که مناسبی نه اینه این. به خلاف مثل دوزی به خلاف مثل سرقت مثل فرسون نستجیبلا زهنا به خلاف فرسون جاسوسی بگیم هر کیفری متناسب است. در حقیقت یک جوری باز تنظیم بکنه قانون که کیفر شعاع هم گناه باشه شعاع قرم باشه یا باطن او باشه یا انعکاس او باشه یا وصل اون روی سکه به فارسی فارسی معاصر ما اون وجه, وجه دیگر عمل باشه حالا اگر جور ما تفصیح رو اون وقت بگیم که آیا این کیفیتی که شعاع عمله به مجرد خود عمل ما در نظر میگیریم یا میایم عامل رو هم در نظر میگیریم یعنی در حقیقت اون کیفن باید شعاع از دو چیز باشه هم عمل هم عامل پس نستجیب و بلا جاسوسیه برای بیگانه قبکای روسیاز شیف بلا اشتار. بگیم شوهرش همینه که اینجوری مثلا ده سال پنج سال زندان بکنه. که نیاز برای بیگان جاسوسی میکنه این باعث که مدتی از جامعه محروم بشه. من با مثال روشن شد. اما خب جاسوسی برای بیگانه تفاوت این یک فرد عادی بقالی حساب میکنه. هم فرض یک فردی که مثلا سرهنگ ارتش مثلا میکنه. بعد ممکنه است یک مدیر کل بکنه. بعد است مثلا از چه یک وظیفه جاسوسی بکنه. بگیم درست جاسوسی در نفس خودش یه گناه و کیفر خواست خودش داره لیکن اون خصوصیات عامل و فائل رو هم باید در نظر بگیریم یعنی ما در کیفر خودمون هم جرم رو در نظر بگیم هم مجرم یکی از آن که اون سکت در قوان حقوق جلی میگن کیفر یه مادی داره که همون جرمه و یه انصار معنوی که فائل باشیم من میگم اصطلاحش اینطوریه من چون با اصطلاح صحبت می‌نم که عوامل دین خود من تعریف لازم می‌کنه معلومه ان شاءالله اصطلاح اون واقعا عنصر مادی و معنوی بنظر من خیلی اصطلاح شفیق نباشه اگر درست ایشون نقل کرده باشه من چون نمی‌دونم ایشون درست آورده مراد کنه همین باشه سر مادی و معنوی یانه به هر حال فرض اگه بناس و یک شخص عادی برای جاسوسی پنج سال زندان بگیره بلیه یکی دیگه بجریه 20 سال مثلا 15 سال یعنی میان جرم رو در ذمه مجرم هم حساب میکنن اینطور نیست که جرم تنها باشه یه روایتی هم از ازمیر مؤمنی هست که تو در ماه رمضان شراب خورد بسته 100 تا سال من یادم رفت دیگه اون کامپیوتر من کنم تو کامپیوتر هست یه روایتش به نظرم 100 تا شلاق بدن گفت واسه زیادی دادن گفت 80 تا مال شراب خوردن اون 20 تا برای حرمت محرماتم چون حرمت محرمزا رو شکوندی یعنی برای مجرم پس برای جرم 80 تا برای مجرم هم 20 هزارم فرضونه اگر حالا من اندازه تو ذهنم نماسله ای رو خالص مثلا 20 پس ما میگیم که ما یک مطلبی داریم در باره دیه دیه در یک کسر به حساب قرض دیه به سادیه قرض در اشعار قروم یک سوم اضافه میشه خاطر ماه هرام اینجا هم مثلا بگیم ما هر دو رو در نظر میگیریم هم به اصطلاح فعل رو در نظر می‌گیریم، هم فائل رو در نظر هم جام رو در نظر میگیریم حالا که یه توضیحات اینجا خیلی بحث طولانی بشه از بحث خارج میشه، خیلی طولانی بشه. حالا من اجمالش شد سؤالی که در اینجا هست که خب پس ما قبول کردیم که ما در کیفت هم جرم رو در نظر هم مجرم رو این درست این ما قبول کردیم که یک فهم علایی داره و فرق میذاره حالا اون تحلیل قانونیش من نمیخوام کلی وارد این ضمن کلام در چیز دیگریه اون نکته اساسی این مقدار بعد اون نکته اساسی این است که شما آمدید برای مجرم کیفر در نظر گرفتین به خاطر مجرم بودن و غیر خود جرم محل کلام ما فعلا در جایی که جرم میز اون شینه تمام بحث ما اون نکته اساسی بحث ما پرشن شد در تجربی بحث ما در تجربی اینجاست که خود عمل جرم میز چون محرو اینه که این آبخورده شراب نار به این بحث نقطیه بحث اینه شما اگر جرم بود و مجرم خب یه مقدار کیفر به خاطر جرمه این خاطر مجرم اما محل کلام ما جرم نیست آب خورده به عنوان شراب و آب در آمان که شراب خورد آب در آمان یکی سی گفت برش بسی شراب بخرد از از بخون خیلیه اجتماع بسی آب پشت داده حالا فرسون به عنوان شراب هم خورد اون نکته اساسی در اینجا اینه اگر جرم بود شما می توانستید مجرم رو در کیفر برایش حسابی باز کنید اما محل کلام ما اون نکته قانونی و مشکل یعنی اونی که انذار قانونی و بحث حقوقی کار رو مشکل میکنه جرم نیست درست به نیت جرم انجام داده اما عملا جرم نیست حالا این سوال اینه که اینجا چه کار میکنیم؟ این بحث اینه نکتی اساسی بحث و نطفه بحث اینه حالا فرصم این بعد این که روشندتر بشه حالا مثال شرگیشی میزنیم بعدا باز این مثال های عرفی و این توضیح بیشتری رهی دا داره. مثلا در اون مثالی که امیر اون شخص روزه در شلاخ بیست زیادی دادن به خاطب حرمت محارمه حالا فرصم این شخصی حتی در مقابل مردم در ماه رمضان در روز روزه ماه رمضان در مثلا معرزان ظهرعصر در روز گفت من این شراب میخورم برای اینکه بدونی که مثلا من تو ماه رمضان شراب میخورم خب شراب خورد بعد ما شو آب شراب نیست اصل تقریرا که در خیر این تقریر اینجوری درست شد یعنی اصل منصوصه ما یه غیر داریم اونجا چیکار بکنیم سوال اینه اگر خرج سوین برای شراب کردن در محرمه زان 80 تا به خاطر جمر 20 تا به خاطر مجرن باشه. شد؟ این سر کشید به عنوان شرها و توی واهرنزان و حق و حرمت محرمه بعد نا آب، آبه، این او شراب نپره. سوال اینه، اینجا چند ضرب الشلاخ می‌خوریم شب؟ احتمالاتی رو هم که عرض کردیم یه احتمال این است که این رو با اون کسی که شراب واهی خورده یکی حساب این سر یک احتمال است که نه این همون حکم شراب بشه بدیم هشتاز یه احتمال است که نه ما بیانیم تفکیق باز بشیم هشتاز زرب مال شراب 20 زرب مال فائل مال مجره پس بیس زرب با خاطر اینکه با خاطر این که با عنوان محر... این آب خورده اون عقوبت و کیفر مجرم رو برش بیاریم یعنی بیس ضربه خب دقیق کردیم یه احتمال چهارو هیچ کدا چون درست بیس ضربه اضافه شد لیکن 20 ضربه روی جرم مطفیلی روی سریم شد کجا اون بیس ضربه که آمد روی جرم. جرم اضافه شد محفوظ کلام ها اینجاست که الان اصلا جرم نیست وقتی جرمی نبود چی اضافه بشه یا حالا غیر از بحث قانونی بحث عدبیش هم بگیه مجرم به اصطلاح معنی اشتباهی از مرتکب جرمه مجرم به کسی گفته میشه که جرمی رو مرتکب شده این وقتی جرمی نیست چطور به سلقه مجرم بکنه ما چطور دهیم بگیم مجرم؟ خب جرمی میشه واقع نشده در اونجا امیر المؤمنین سلام الله علیه حالا فرض شده مثلا اگر باید سرزن درست باشه حالا این حضرزن در ذهن من که میگم درست باشه امیر المؤمنین بیش ضربه زیادی به مجرم زد به شراب شراکر اینجا شراکر اینی مسکل اینی شرط مست اینی درسته؟ آمه لذا اینجا وقتی جرم نبود به طبیعت حال مجرم هم نیست جرم نبود مجرم هم نیست پس معنا نداره که کیفر جرم یا مجرم بار بشه خود مجرم، مجرم. ها اگر تجربه باشه باز خودشی به عنوان مستقلی بشه مثلا یک رواجی داره که کسی که آمد به یکیسی گفت مثلا نستجی رو به مثلا با مادر مثلا در حال خواب مثلا کاری بعد اونم اون طرف ورسمی شاد که اینجور گفته گفت هرگز بفهم اون روز افتاد حس سایه و سایه حد این سایه مثل خوابه تناسب بین جور و بین کیفر خب این در خواب دیگر خب کرد. اون آقا استادش که مثلا حرف بدی واردن گفته او خیلی خوب این شعر میریسه که شلاق رو به سایه میزنه اون سایه یعنی اون تناسب و وابیم کیفر و جور قرار در اثر کردن که خواب مثل سایه انسانی اینا مثل سایه او اون جلد در حال خواب انجام شده کیفر هم بر سایه اون جاری میشه نه بر خودشف این در حقیقت این شبیه اونه یعنی اگر بر هم بخوایم چیزی بگیم مثل همین شلاغ دادنه به سایه شخص اگه بخواییم اصطلاعا تفسیر قانونی برش بکنیم و لذا از مرزون شیخ نرم شده که قبع فعلی نداره اما فائل قابل ملامته نه اینکه، باز یک حکمی داره حقوبتی داره فائل ملامت میشه که سرینه داره یعنی این انسان تجربه داره این انسان در فکر مخالفت بوده ملامت داره اما عقوبت نداره با چند شد پس سر کلام شیخ رحمه الله با این مثالی که من ازدم فکر من یه خیلی واضح و بدیهی چون میگه جوار مرتکب نشده مجرمی وجود نداره نه کیفر و جزا برای جرم هست نه کیفر و جزا برای مجرم هست البته این شخص سوء سریره دار آدم بدیه سعی کرده مخالفت شارع رو کنه آوروی دین رو ببره آوروی ماه هست خب بعد این ملامت داره اما این ملامت در حد اقوبت نیست در حد کیفر نیست در حد جزا نیست در حد معلامه هرت این نیست اما در حد این که مثلا فر اینجوری استظار بکنیدبدیم بگیم اون ماین خمودن ه تا زیانه برای شربخن 20 تا برای ماه هم ازان اینجا پیش شور بخن نبوزه پس همبی تا بزیم استهار اینجو می من برای یک مثال خیلی واضر زدم که خیلی بهزن روشن میکرد کابللا شما در اینجا چه کاری میکن؟ استظار انگ ایجوری میشننظرره قانونی در اینجا غیر از مصوص بحث من بحث حقوقی بخواد ما اینجا مناسب با ارتکازات و اغلای ما چیه؟ آیا مثلا مناسب با ارتکازات و اغلای ما؟ بگیم این آقا چون در فکر حد که مولا بوده پس قبه فاعلی داره؟ حالا اینه چیمین قبه فاعلی داره؟ گذ هست اون بیست و ذره میخوره بخوره؟ گفته بخور این قبه فاعلی به فعل هم سرایان میکنه اون آب خوردن هم قبیح میشه بعد از خب افصاحی قوله فعلی شیشو خود عرض کردیم باو مثال یه مثال اروپی هم میذارم خدمتتون فرض شخصی از اون وضعیه یک کسی رفتو گفتم من سفیر وان کشور بیگانه هستم معلومات بشه برنامه داشت اصلا تو پینه دوستا کرد گفت هیچ کاری آقا دو گفته این آقا فرض حالت تجسس انجام داده بحث اینه که آیا این عقوبت تجسس داره اونم تجسسی که مربوط به وزیره یا نه عقوبت مجرم داره عقوبت جب عملا هیچ هیچی نشده نه اسنادی که یک کشور بیگانه رفته نه کاری شده نه تجسسی یکی جا یک آدم لاتی بوده و از این اراغ گرمسه و اشتایم پاره کرده نه با کشور بیگانه ای ارتباط بوده نه لیکن این که یک وزیر در این مقام حاضر بشه خب کار بردیه بناش کار آدم بردیه اما هیچ یک از معلومات به اصطلاف کشور لو نرفته گفته نشده ترس نشده تصور ده حالا آلا اگر تجسس کیفرش پنج سال زندان بود اگر اون شخصی که این کاره کرده وزیر باشه پنج سالش میشه 8 سال آیا ما در اینجا میگیم پنج سال برش بار میشه هیچ تجسسی اینجا اقدام کرده هست. اما تجسسی بار نشده یا بگیم هشت سال بار میشه یا بگیم سه سال بار میشه یا بگیم هیچ کدام از این ها بار نمیشه یه زاویه دیگری با وزیر برخورد میشه و اون که به درد این پست و نمیخوره خوب دقت بکن ربطی به جرم نداره تصور شد. این برکوری که با ودیر میشه، این تصور اقلالیشون میخوانم، بحث اقلالی. شما چی رو قانونگذاری. اونه که مناطق با ارتکازات و اقلالی در قانونگذاری کردم میکی. باشه؟ کسی که برای بیگانه زج بکنه برای کشوه بیگانه پنج سال زندان. نه، مدیر کل باشه هفت سال، وزیر باشه هشت سال. اینطوری. که به اصطلاح این کیفر و این جزاء شعاع اون جرم و مجرم باشه هم شعاع جرم باشه انعکاس جرم باشه که تجسس انعکاس مجرم حق باشه که مقام قرو رو در نظر میگیره حالا این آقای کیفیرا گفت من سفیر فلان کشورم به استانم فرستادن دروغی دروغوی عالم لاثیف خودش کارت ورود فیلموز اصلا بازنشیا پاره کرد رفت دور پس تجسسی صورت نگرفته سوال اینه که از نظر قانونی و از نظر حقوقی مناسب چیه آیا این کار تجسس نشده معذاله 5 سال زندان برای بریزه بشه یا چون وزیر بوده 8 سال یا چون جور نبوده و مجرم بوده فقط سه سال چون 5 سال مال جرم سه سال مال مجرمه یا هیچ کدوم نه جر... چون اگه جور نبود مجرم نیست دیگه وقتی تجسسی دی در کار نبود مجرم هم نیست بله که این از زاویه دیگری بگه نا تو نیست وزیر این مملکت باشی ببین این زاویه دیگریه قیل از اون جرمه مرمون شیخ همسایی عقیده مبارکشون اینه که اینجا جرم نیست وقتی جرم نبود طبیعتا مجرم نیست بله این آدم آدم بدیه این هست این آدم آدم خوبی نیست این در مقام مخالفت بوده این استنباغ ملامت داره اما استنباغ عقوبت نداره این دو با هم فرق میکنه اون قاعده ای که ما از کردیم ما در باب کیفر و جزا هم جرم رو در نظر می هم مجرم در جایی که جرم باشه نه جایی که جرم نباشه مجرم رو تاثیر جرم در مجرم میبینیم با وجود جرم خب دقت بکنیم نه با نبود جرم امیرالمؤمنین فرمودند این تو ماه رمضان شراب خورده 80 تا برای شور بخند 20 تا برای حرمت ماه رمضان شد 100 خیلی خوب سلام حالا آمد تو ماه رمضان برداشته خورده بروان شراب آب در آمد سوال اینه این اصلا خورده و محقق نشده البته این تو محرم ازان خورد جلو مردونم خورد گفت من تو محرم ازان عمدی شراب میخورم بعد من جو آب از های شراب نیست. پس جرمی محقق نشده. این شخص هم به این لحاظ مجرم نیست. حالا این شخصش کار بکنیم؟ از کنیم در احوالی که روز بحث قروخوندیم بعضی گفتن بینم 80 سال 100 تا تازیانه چون هم قمح فاعلی داره قمح فاعلی سریان پیلا میکنه به شرب ما امش شهر میشه, میشه حرام. از این هم همه تا سازیانه و یهتم از که هشتات تا رئیس احتمالش و یهتم از که اشار ابارات ادهی بیست هم مالا قبعه و یهتم از هیچی ملامت میشه اما جور انجام ندازه وقتی جرم نبود معنا نداره که سفر مجرم اون کیفر مجرم نظار مجرم وزباز اون جور نیست که مجرم باشه پس به همه بحث در حقیقت در اینجا اونی که مشکل درست کرده اینه تأثیر مجرم بر کیفر و بر جزا روشن این نمل کلام در جایی که جرمیسته بار بگنیدیم اگر جرم بود روشن اینجای که نیست الان محل کلامه روشن شد مده این محل کلامه که ما مختزای قوائد و اغلایی در واقع جزا و تناسوبی که جزا با فعل و فائل داره اینجا چی اختضا میکنه؟ البته شبیه این بحث رو من چون نخوندم در کلمات اصحاب ما به یک عنوان دیگری آمده گفتن اینجا اگر بگیم به اصطلاح عقوبت نداره برای یک امر غیر اختیاری میشه چرا؟ شون این بنیاز شغل خرم خب دو نفر باشن هر دو یک آبی رو بده نشه که بخمای رو بنیاز شغل خرم یکیش خرم داره دیگه یکی خرم نداره اونجایی که خرم داره دیگه نگ. مجوب عقوبت نداره میگیم برای امر غیر اختیاری اونا جواب دادن مثلا علی هم جواب فرامیدن رضوان الله تعالی علیه و استاد و مرحوم شیخ میگه ایشون می‌فرماج اینجا عدم العقوبت برای امر غیر اختیاری است عقوبت بر امر غیر اختیاری قویه اما عدم العقوبتی که گفت این همون تعدیل به این لغت مو کرده کردن به اون تعدیل اون جور مجرم تأثیر داره در جرم اون جایی که جرم باشه اصلا جرم نیست جایی که جرم نیست آیا اون سفت نیتونه جرم درست بکنه؟ دقت بکنه این انسان بدی بوده خواسته هست که حرمز بکنن همه قبول هست که حرمز محرمزان رو بکنید اما حال آب برده شراکه نه برده پس یه بحث اساسی در اینجا زاویه بحث ما اصولا در باب عقوبات و کیفرها چیلی تصور بکنیم. به ذهن ما میاد اگر ما باشیم و مختصه اقاده انصافا هم با مرموم شیخ است. یعنی به عبارت این اخراج جرمشون محقق نشده نه کیفر بر جرم ثابت میشه نه کیفر بر مجرم بله ممکن است به خاطر نقطه خارجی بعضی از حالات مجرم رو نگاه دید شخص رو نگاه نه مجرم فایل باید بگیم شخص باز بگیم فایل هم نیست بعضی از حالات شخص و بعضی از آثار به لحاظ حالات شخص و منطبه شخص به نظر بگیریم اما این که بگیم مثلا شما اگر جرم تجسس پنج سال زندان بود و مدی و وزیدی که تجسس بکنه هشت سال سه سال به خاطر منصف اون بکنه اینجا اصلا تجسسی نشده اقدام کرده اوراق هم داده اوراق مهم به من میکنه اما این اوراق خارج رو درسته یک این طرف هم از این روضی با سفارت و این قسمت رو با خارج هم نداشته در اینجا بگیم تجسسس انجام نشده اون پنج سالی که ما تجسسسه معنا نداره مترتب بشه اون سه تا الی همشواله سود دقت کنید این سه سال بعد از جوردن از جور قلجنه حاکم شده اگر می‌خواد کاری بکنه اول باید ثابت بشه قبه این عمل وزیر یعنی قبح باهری از قبه فاعلی به قبح فعلی برسی در که اونی که مناسب بود با ابتکارات اوغلایی اول قبح فعل بود از قبح فعل به قبح فاعلی میرسیید مثلا تجسس حرام بود خویی بود و اگه تجسس بخونه قویسته اینجوری میرسیدیم نه اینکه از قبه فائلی به قبه فائلی برسیم برشن شد بل ازا به ذهن که مناسب با ارتکازات و با خضایی که ما داریم انصافا هم با مرموم شیخ انساری باشه نه عقوبت بر جرم مفره نه کیفاره بر جرم مفره و نه عقوبتی اگر تاسو قانون برای مجرم قرار بده مثلا این, این رو به عنوان شراب در ماه رمضان خورد بگیم شراب نخورده اما چون به نیت حفظ حرمت ماه رمضان و آب خورده این مقتضی محت میشه که 20 چیز ضرب شلاقش بزنه 80 تای شراب نه اما 20 تای حفظ انصافش حد حرمت ماه رمضان با شراب خوردن نه با آب خورده که و نظام مجرد افتار چیه ولی بله اگر مجرد افتار بله. اون حد که حرمت ماه رمضان فرسون حد که حرمت ماه های حرام با قتل با قتل شخصی در ماه رمضان یک سوم اضافه میشه در ماه های حرام حالا فرسون یک مثلا در یک اتاقی یک موجودی دید انسانی دید خیال کرد مثلا اینکه از مؤمنینه امدن چیزد با او رو کش بباره خودش بعد معلوم چیز اصلا حیوان بوده خیلی که نشسته بوده این اشتباه کرده به یک انسان بیاییم بگیم چون تو ماه حرام بوده حرمت قطعه نداره چون خیلی بوده اما اون مال حد که حرمت ما ایام حرام رو داره میاد کجا <تصفيق> حد که حرم یا مثلا فرصید چیزی دیده زده بعد نمیشه لباس بوده اصلا پارچه بوده پر کردن به شکل آدم اینم تو تاریکی لباس هشیست دارده باکی زده اصلا آدم در نیمه اشتباه در نمه بیارم بگیم چون خرمت قفل مومن برای صدق نمون تو آدم که نمیشه چون تو ماهای حرام بوده یک سمان دیگه رزش بگیریم اون فعل فعلی نداره شداره انصافا خلاف ارتکاز و غلایی است یعنی اینها رو قبولش کردن بسیار بسیار مشتله انصاف قضیه قبول این مساله ولو مرحوم آیه شما هم سن اسوانی خیلی اصرار دن که حرفت و حالت و اما انصافاً قبول این مساله مشکل. البته در اینجا یک مطلبی هست که شبیه این مطلب هم تو بحث براعت ما متعرض شدید خلاص اون مطلب اول ما بحث براعته اشاره بکنید ما از که در بحث براعت خود احتمالی نفس منجز نیست از اون بحث براعت و قبعه اقابلا بیان و اینها به نظر ما طرح مسئله به اون صورت درست نیست طرح مسئله اگر بخیم اصولی بشه اینجوری بگی یک آیا احتمالی که در اطراف علم اجمالی نیست یا به تعبیر بنده احتمالی که در دایره بحث نیست دایره بسته یا این خمره یا اون خمره این دایره بسته مراد ما اما این خمره احتمالا این دایره بیر بسته احتمالی که در اصلاف این اجمالی نیست منجز نیست مگر اینکه این احتمال قوی باشه یا محتمل بسیار مهم باشه یعنی لابد نام اهد الامره اما قبرت احتمال و اما اما اهمیت ال بله ایشون با احتمال منجزه ایشون تأبیر حق و طائع کردن حق و طائع تأبیر کلامی مناسب با اصول ایشون با دیگرن احتمال منجزه ایشون با در تکالیف لاحیت به مولای عقیقیس احتمال خب اینا همه دقیق میخواهم مولا. خب احتمال بله حاضر قبل خب نیست قبیان مفروضا نومون پیاسا بله احتمال که چیز نیست محتمل مثلا ما عرض کردیم اگر در قوت احتمال بحث کردیم مناسب با برایت اگر در اهمیت محتمل بحث که مناسب با احتیالی چون اهمیت محتمل کاری بکنه که ما یک صورتی از اون در نفس خودونه ابداع بکنیم اهمیت محتمل ولی ازا در روایت داره که مثلا اگر من امرأتن انها اخت کن من رضا ازواج نکنیم لنه ها نکاح و نکاح من هلولد لنه ها ن ببینید اینجا میخواد اهمیت محتمل پس یا قوت احتماله بگیم بگیم احتمال چی منجز نیست چه در مولای حقیقی چی در غیره فعلا بکنه در سیری اغلایی به طور کلی احتمال منجز نیست یک درجه خاصی تنجیز داره اینکه هر احتمالی به مجرد احتمال منجز باشه این ثابت نیست بله اگر محتمل مهم باشه اونجا هم ما دست نگه‌می‌ذاریم یا اصطلاحاً احتیاج میکنیم پس ما با یکی از این دو سا. وقتی یک سوال این میشه که مثلا اگر ما در یک جایی در یک مایه احتمال یک در 200 هم بدین که سم باشه یک در 500 هم بدین سم باشه ولی اون احتمال خیلی ضعیفه یک در 500 باشه. همین احتمال یعنی یک 10 در... یک 50 درصد 5 درصد ولی این احتمال خیلی ضعیفه لیکن معزاله که کلیه چون محتمل مهمه که حیات ماست از اون درست مگه می داریم می اینجا این بحث و این درست این سیره اقلائی در عمل اقلائی و اردام اقلائی این نمال کلام ما با احکام شریعت چیجور رفتار بکنیم این بحث احتمال قدیان احتمال انطباق موه احتمال الاحتمال لن یکن فی اطواق العلم اجمالی انتو في الواقع انت احتمال في اطواق العلم اجمال از الان في الواقع این رئیس وقوع في احد الان رئیس الدم ما فی مشوه لیسی انما الاشکال فی انتباغ الانوان على احدهما ما فالم موجود و من این بفارسی هزتا لذا ما که این یه اصطلاح اصولی است علم اجمالی نیست تفصیلیه معلوم اجمال داره خود علم منده یه خطر خون اقتصادی این که, که اجمالی نیست که ولی ذات در مسائلی که اینجا کردم که تو بحث علم میگن اونجا خادم است اشد مسائلی که مربوط مربوط دانما واضح است ایشون عین علم تفصیلی نیست فهم این مثل این میمونه که شما از دور در مثلا صبح هوا یک کسی میاد شما خیال میکنی یا زیده یا امره ابا ابو سرهشه اباشه که کنار میکنه ابا که برمیاد چیز دیگه نمیشه منظورشه زید مثلا علم اجمالی اجمال مال اینه که انما شما دیدی یا یعنی هم رو که داریم قطفه خونه که دیدیم بهش مخصوصه که چه بحثی نداره که اینکه علم شبسییه؟ لذا علم اجمالی معلومه و الا تفصیلش خودش علم خود علم اجمال نداره معلوم اجمال داره هرم به این این خود علم تفصیلیه چه اما باید اون تفصیل داره به قلب این هم نکته اون تیره اصلا هستنی که بعد توضیحش تو بحث علم اجمالی تا اینجا این سوال اینه مثلا شما شک در شربتتون کردین شربتتون که آیا حرام باشه حرمت مثل هم سمه که احتمال ضعیفش هم اثر میگذاره چون محتمل مهمه متنجز میشه بر ما. یا از قبیل مثلا فرسون احتمال میدن مثلا فرسون این مثلا آف درش این مقداری مثلا مرکر داشته باشه یه کمی ناراحتی برای ایجاد میکنم اما کشنده نیست خب بگیم احتمال 1500 تحقیل نداریم قابل قبول ما انجام شدیم این بحث در ما هم میاد که ما تعاملمون با احکام شرعی چی جور باشه این سؤال اینه آیا اگر کسی مثلا این شراب مثل جاسوسی کردن یک فرد عادی است یا اگر کسی مؤمن شراب خود مثل جاسوسی کردن یک فرد وزیر بحث بست که گفتیم در شریعت چی جور تطویقش بکنیم آیا تطویق بکنیم مثلا حالا فنسن... با قطعه نظر اون نصر خاصی در ماه همزانه اصلا بگیم کلن هر فرد مؤمنی که شراب خور میشه یه جاس مثل یه وزیر یعنی در اونجا باید مدرم رو هم در نظر بگیری این نیست که فقط در نظر بگیری مجرم هم در نظر بگیری در شریعت اینجوریه آیا میشه این احساس انصافاً خیلی مشكله جز یعنی بحث دیگری که در این یاد این زاویه دیگر بحثه چون این بحثی که ما الان کردیم بحثی بود که سعی کنیم حسب قواعد صحبت کنیم این بحث دیگه حسب استظهار از عدله من افتر پی شهر رمضان متعمدن علیه کذا خوب دقت بکنی این آقام گفتن امروز ما رمضان است و افتار تعمد کرد بعد منوز رو کنار دی حلال دیدن امروز از اول ماه شباله اصلا ما رمضان نیست آیا من افتر پی شهر رمضان متعمدن شامل حالش میشه خوب دقیق انصافا اگر استظهار را کار اون بحث عقلی اون بحث عقلی بود کنار بقوله حالا عقلی عقلی هم نه قال قانونی بود اون بحث کنار ما باشیم و استظهار از ادله انصافا اگر ما باشیم و استظهار از از طبق طب اولیه قضیه کیسرها شعاع و و انعکاس خود جرمن وقتی به مجرم نذارن موبو چون ظواهر درزه از سارق و مسارق بحثه و ایگه ما یه از آقای شب رفت یک جایی و از دیوا بلند و فلانو زحمت کش دزدی کرد صبح که اومد ببین مثلا زن عیال دووم شده خونه خودش میاد که خونه برداده بوده این مال خودشه برداشته ظاهر سارق و مسارقه شامل حال این نمیشه دیگه یعنی قبه فاعلی در اینجا متصور هست اما قبه نیست من اونجا کرده مال خودش و خونه خودشه شب تشتید نه از خونه همسایه که شب خونه کسیه رفت بس خونه خودشه انصاف قضیه در مقام استثار پس بحث اولی مقام به اصلاح و حقوقی و قانونی یا به قلعان بود بحث دومی استثار از زواهر عدلله اگر ما باشیم و زواهر عدلله این چیزت فقطه ایدیا عیدیه ما مال جرمه یا مال مجرمه سوال یا مال هر جوه ما باشیم و ظاهر ادلیمال جرمه ازافه. من افتر متحمدن فی شرمزان مال افتار متحمدن و من یک طول مؤمنن متحمدن فجزا او جهنم و خالدن فیها یکی که کش عنوان برمان مؤمن برماندوستی اصلا انسان نبوده حیوان بوده یا ماندوستی یک کافر محدودنی بوده که مدتها دنبالش اینکه بکشن این منزول او رو بشته. من یک تول مؤمنن متعمدن استظهار ما از این نصف قانونی چی میفنیم؟ من فکر کنم از این نصف قانونی میفهمیم که این کیفه مال جرمه نه مال مجرم و نه مال مجرم و جرم با هم از سارق و سارقه مگر در جایی که دلیل بیاد مثل این که مثلا اگر قتل ان در ماه حرام شد تو قل لذبیه به مقدار سلس یا مثلا کفاره هم داره اتبر را به اون هم داره این ممکنه بله اگر دلیل نیست انصافه بله اونجا جرم وجود نیست آه تازه اونجا جرم تشییع فیلم میکنه انصافه اگر مطمئن شد مثل هیچ مثال اعترام و تأمل در فیض این در ما رمزان فرض کن من مثال فکر ما رمزان از جلو مردم شرکت کردند وشون با رمزان نبودیشون ای ایده حل زدن ایده در اون تو تو باز اینجا اون بیستا دیگه بشنید که چون تو مهرمزان باز باشید اینجا مهرمزانید کار تو مهرمزانید کردیم لذا اگر ما باشیم و زواهر عدله پس اون بحث اولش عقلی بود دومیش استظهار از نصوص انصافا باز هم باشه مراد شیخ هم باشه کنم سارید از بخواهر زاهرم مرادشیخ هم همین استظهار از نصوصه ا مرادشیخ اون بحث اول نیم ما باشیم و استظهار از نصوص حق باشه چیخه این کیفرها و جزاها بار میشه در جرم و اگر خیال میکرد در جرمه و جرم نبود خایناهای بار نمیشه و اگر هم به خاطر مجرم جایی آمد در جایی که جرم محقق بشه اگر جرم خیالی باشه به آن تجربی باز هم مال مجرم بار نمیشه زماهرش اینه که جزا و کیفر مال جرمه نه مال مجرم و نه مال جرم مجرم پس تا اینجا بین در این بهسا جهاتی که در بحث بود است که از زوایای مختلف این زاویه‌ای که در بحث بود مجموعه شواهد در این بحث بقول آن عقلی و نقلی حالا ما گفتیم مطابق میشه با بحث اول چون بحث اول مقدم کردیم گفتیم مالای جای استاد همین الان در باب نیت در باب نیت هم در آمد این بحث دوام نتیجهش همون شد فردا انشاءالله سالا بحث سوم که آیا حد کن اول مولا همی را که مرموم آقای اسفانی از این راه بارد شدن فردا